محمد جون سلامون علیکم سیتاری سلام. سلامت باشین خوب است خوبه مرحم الله، انا بخير. سلام. كيف حالك يا محمد خيلي زين الحمد الله الله خيلي که الله صدمت تسلم افراد قليه قليه بعلاقه حرف زدي افراد افراد. hello مشتوقت امور چکار کردی؟ ديروز ديروز چکار کردی؟ دي. ديروز مينوگو مسابقه داشتی درسته دي. بله مسابقه داشتم چي خب. مسابقه داشتی؟ بهم بگو. مسابقه بازی الکترونیکی بود. درباره فوتبال بود. بازی می‌کردین دو به دو با هم. مسابقه می‌اومدین بالا. ازوی بود. سلامت باش. زود باشید. خب. بالاخره با کجا رسیدید؟ چیزی دیگه نمی نهایی شد؟ قر شد حالا؟ دوباره قره کشی کنم اون درات با هم بازی کنیم برنده معلوم شد دیروز کلاس داشتیم اما شما به من گفتی چون مسابقه داشتیم خاطر این چیز به جای, جای, جای کلاس دیروز امروز شد بله بره درسته خوبه درست خوب محمد جان اولا اتمنون. قبل از هرچی ممنونم قبل از هرچی من ازت تشکر میکنم اولا راجب تشرفتون در این مصاحبه و موافقه شما زنده باش شما مواف برای موافقه شما به زطه این مصوبه بخش داخل سیاست من ازتون خیلی خیلی بسیار تشکر می کنم ممنون شما حبيبي محمد شكرا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تسلم خب محمد جون اولا بي بينا عزمون خودتون بقول چگون با من با بندر فدله شمی محمد خلیقی هستم یکی از استادای عزیز و بزرگ در زبان عربی شما باشنیدیم در طریق مادرم مادرم یکی از دوستانشون شما رو میشناخت گفتن که ایشون زبان عربی خیلی خوب بلدن کار کنن چون خودشون عربی صحبت میکنن عرب زبان هستن به زبان عربی کامل عربی عراقی و چندین زبان های دیگه کامل تسلط دارن برای همین مضاهمتون شدیم که عربی عربیات بگیرم مراحمی من در خدمتون هستم و, خ... و در خدمت مادر محترمتون هم هستم زنده باش و در خدمت خنمال. پدر محترمتون هم هستم تا پدر رو نگو چرا در خدمتون همه نیست. <تصفح> خوب محمد جم طالعا از بنده از رفع عدم هاشمی الان تنم دوم داریم شروع بله. از من در افادم راجب فرهنگ زبان عربی چی یاد گرفتی؟ چی تفاوت رو دیدی بین فرهنگ زبان عربی و فرهنگ زبان دیگه؟ چی زبان ما یا زبان دیگه؟ خیلی زبان فکر می کردم پیچیده ولی نه زیاد پیچیده نیست شما یاد دادید که اونقدر زبان سختی هم نیست که فکر می همه میگن زبان سختیه یه سری دیدگاه دیدگاهای غلط بین فرهنگشون بود که خیلی‌ها میگن زبان سختیه خیلی دشواره نمیتونی و اینا ولی نه خیلی زبان آسونیه اتفاقا نسبت به کل ها فصیح و عامیانه‌شون خیلی تفاوت ایجاد کرد مثلا واسه من شما گفتید بهم توضیح دادی فهمیدم که تو این چند ترم اول که گذشت فهمیدم که زبان عامیانه‌ش رو اصلاً خیلی آسونه یعنی نه خیلی. کار سمطی نه مستعد پیچیده است یکم تمرین کنه آدم راحت به زبانشون مسلط میشه دقیقاً آفرین آفرین دقیقاً هیچ سختی وجود توش نیست خیلی آسون, آسون ترین زبان در دل زبان عربی است با من با من <تصفح> با من آسون‌تر با من ایرادش بله چی به لهجات زبانش چی علاقهش چی غیر عراقی آسون‌تر میشه خیلی آسون‌تر خب محمد جون داخل سطح مکالمه عربی چی نکاتی مثبت رو دیدی؟ دی؟ تو سطح مکالمه نکات خی... زیادی بود مثلا باعث شد که بفهمم مثلا یک کلمه خیلی معنیهای مختلفی داره یعنی مثلا ما تو زبان خودمون گربه گربه است درسته. ولی مثلا تو عربی عراقی ما فهمدیم یه دونه ساکن یه فتحه یه کسره این اونور وشه خیلی تفاوت ایجاد میکنه کل معنی عوض میشه درسته درسته دیگه چی رو چی گرفتی چی نکاتی مطمئن رو دیدی دیگه... باز شد بف... تلاش کنم که مثلا بیشتر عربی رو بخونم خوبه. علاقه منتر شدم به عربی با شما بعد فهمیدم که زبان خیلی مهمه نسبت به زبانهای دیگه چون عربی فقط عربی عراقی که نیست عربی دوست. کل خیلی ما عربی های چندین کشور متفاوت دیگه هم داریم سر همین رقبت هم برای خوندنش بیشتر شد آفارین خوب از کتاب بنده است کتاب من عرب و رسخونگو فارسی یا عراق برنس خونگویان فارسی خب چی نظری داری؟ باز کتاب خیلی کتاب کاملی بود هم چه لفظایی که توش داشت کلماتی که داشت هزاران خیلی. هزار کلمه بود مفصل آره. هزاران هزار جمله زبطای صوتی دقیق نشون میدادید اون تلفظ اون کلمه اون جمله چجوریه خیلی کتاب مفیده بود خدا آره. من هستم خدا خب محمد جان. بینندگان بیرندگان عزیزمون علال خصوص جوانان ما بهشون چی توصیح میکنید؟ بابت توسعه پیشرفت خودشون برای خودشون چی برای یادگیر زبان عربی چی برای یادگیر چیزی دیگه علال خصوص زبان عربی بهشون چی توصیح میکنید؟ برای زبان عربی من خودم از اون کسایی بودم که خیلی خوش دوستن داشتم ولی وقتی خوندم با آقای رافع فهمدم دلست. که نه اونقدر زبانه مثلا پیچیده و سخت و چه میدونم خیلی اون بگیم مثلا مورد علاقه هم نبود دیگه اونجوری هم نبود یعنی فهمیدم که نه خیلی زبانه قشیرینیه واقعا وقتی خوندم با رافه فهمیدم خیلی زبانه خود و برای بینندگانم توصیه میکنم که امتحان کنن چیزهای مختلفو زبان های مختلف رو بخونن مخصوصا عربی خیلی به دردت میخوره دقیقا. به درد آدم ها خیلی میخوره چون چندین کشور دنیا عربی زبان هست دقیقا دقیقا افرمید دیگه چه بهشون چی توصیل میکنی؟ بابت بیشرفتشون توصیحا چی توصیل میکنی؟ به علاوه زبان عربی به جزی یادگیر زبان عربی تلاش کنن تلاش کنن نامید وجود داره. دلوقتي. ولی باید پاشن دوباره تلاش کنن بفرق. تا بشه چیزی که میم فری بیت فریقا فریقا ان عالی منم بهت خیلی خیلی افتخار میکنم محمد جان جون خیلی افتخار میکنم ال بعض ت خیلی میکنم راجبه و بابت تشرتون در این مصاحبه و موفق شما برای ضبط این مصاحبه بخشش داخل سرمون مکاره بر روی خیلی می سباز باز محمد, محمد جون انشاال می بینم تا چه ساعت بعدی انشاءالله بیبرت ان شاء الله یا علی خدا نگهدار